بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلوات و سلام و علی رسول الله صلی الله علیه و سلام درس روزی ما و شما درباره نیازمندی انسان به دین هست. اکثرا بر انسان این سوال پای خصوصا برای انسان هایی که مثل ما و شما در 2006 زندگی میکنیم که چون جهان به شکل یک قری کوچک است و کسای زیادی در هستن که دین ندارن و کسای هم هستن که اونها متدعین هستن ما و شما باید در باره تحقیق بکنیم که آیا ما نیازی به دین داریم و یا میتونیم بدون دین هم زندگی بکنیم اگر نیازی به دین داریم چی نیاز مندی داریم دین کدام ضرورت های ما را میتونه که پاسخ بگویه دین در کدام بخش ها بر ما منفعت داره و در کدام بخش ها منفعت نداره ایموضوعه امروز با شما میخوانیم و و ایموضوعه تحت نیازمندی انسان به دین میخوانیم. در قسمت اول وقتی که ما شما از نیازمندی انسان به دین صحبت میکنیم پیش در مورد نیازمند, مورد نیازمند. بود بود بود بود بود بود های و در انسان به شکل فرد به ازیاج دارد. مثلا انسان مثلا انسان نیازمند است با اکثر. نیازمندی ها و ضرورت های فردی نیازمندی های رو که انسان به شکل فرد به احتیاج داره مثلا انسان نیازمند است به اکسیژن، نیازمند است به غزا ضرورت داره به لباس ضرورت داره به نوشیدنی ها این نیازمندی های فردی انسان است که اگر وجود نداشته باشه بر انسان یک سلصده مشکلات را بار میره که این نیازمندی های فردی را دارشمندان به دوزسته تقسیم کردن که نیازمندی های فردی مادی و نیازمندی های فردی معنوی در بخش مادی ما شما گفته مثلا انسان منعیسی اگه انسان به آب زرورت داره انسان با قسط زرورت داره انسان با اکسیژن ضرورت داره انسان با کاربون ضرورت داره این نیازمندی های مادی وجود انسان است در بخش معنوی انسان یک سلسله های داخلی داره که باید اطمینان داشته باشه آرامش روحی داشته باشه آمدی باید تزمین باشه به این شکل میتونه که این دو ضرورت است که انسان مجبور است که باید از نگاه مادی و معنوی این نیازمندی هایش بخش دومی توم نیازندی ها و یا ضرورت‌های انسان در بای می باشند وقتی... وقتی انسان مثل که دانشمندان علم اجتماع میگن انسان یک موجود یا یک مخلوق اجتماعی است نمیتونه خارج از اجتماع زندگی بکنه وقتی که انسان در اجتماع زندگی میکنه بنا این انسانی که در اجتماع زندگی میکنه به یک سلسله از ضرورت های اجتماعی مثل ضرورت انسان به فامیل ضرورت انسان با پدر ضرورت انسان به اولاد ضرورت انسان به مکتب ذروات انسان, انسان با قانون، با مشکل ذروات انسان با قانون و پلیس، با دولت، ایتام اوش ذرواتای اجتماعی است که یک انسان وقتی در اجتماع زندگی میکنه به یه نیازمندی نیازمند است. بخش از این نیازمندیهای انسان، ای نیازمندیهای عالی میباشند. نیازمندیهای عالی یک سلسله نیازمندی هایی است که انسان در وقت که از مندی های فردی و اجتماعی از خلاص شد بلاخره اینمی انسان بر از سوالات پیدا میشه این سوالاتی که برای انسان پیدا میشه مثلا به طور مثال وقتی که مادر یا پدر بر روز جمعه طفل خدا لباسای مناسب میپوشانند و بایدی که ایگار لباس پوشاندند اینا خوب سرش شش لباس پوشوندش بود ازی از مادر یا پدر خود پرساد میگه که ای آمادگی ها برای چی ما خوش برای هدف کجاست خالی کس, کس میریم است؟ کدام جای میمانی خبر هستید بالاخره چرا اینی سوالی که یک الطفل از والدین خود میکنه انسان هم وقتی که با نیازمندی خود متفاوتند این دوستي إكس واحد هذا الإنسان enemy دنيا م هذا الإنسان است که نهایت این وزیفه من نهایت عمال من لطف خود ساخته است خود ساخته است اینالا اگر افتر و در وسط این ای اکسی دارم دیگه هم وجود دارم هدف میشه یا تمام هدف انسان اینمی دنیا همه هدف انسان اینمی دنیا هست این است که به نام نیازمندی عالی میگن که در قدیم و در دانشمندان و فلسفه را در قدیم و در ازشه ساخته است. اینالا اگر امید سه انسان و های فردی اجتماعی و عالی, عالی، این این ما شما میبینیم که انسان به این قدس پیامی دارد چی, چی پیامی دارد؟ در قسمت مادی وجود انسان در قسمت معنوی وجود انسان در قسمت اجتماعی و در قسمت عالی دین مقدس اسلام چی نقش دارد؟ اول بخش که میگریم در بخش مادی در بخش مادی وقتی ما شما انسان مثلا ضرورت هایی که داره مثلا ببینیم در قسمت خوراک در قسمت موشیدنی ها و در قسمت جنس در این بخش دین چی نقش داره اگر دین باطل باشه بعضی ادیان باطلی هست که او انسان ها ساختن فکر میکنم وقت انسان متدین میباشه که بس مادی وجود خود انکار بکنن نخوره نموشه ازدواج نكنند ولی دین مقدس اسلام دین است که مادیات و معنویت دو بخش دو بالی یک پرنده فکر میکنن انسان نمیتونه مثل که یک پرنده نمیتونه که باید بال پرواز بکنه انسان نمیتونه که تنها با مادیات و یا تنها با مجبور است کنه مجبور از انسان هر دو بخشا متوازن پیش ببرند از این خاطر ما شما همیشه در نمازهای خود خداوند مطال بر ما شما تعلیم داده که در نماز خود چی بگید ربنا و پروردگارا آتنا برای ما بده فی الدنیا حسنه نیکی ها و خوبی های دنیا را و فی الاخرت حسنه یعنی ببینیم که نیکی های دنیا و فی الاخرت حسنه و نیکی های آخرت و خنه عذابنا و خدای ما از عذاب آتش نجات بوده برای وقتی که ما همی دعا میکنیم دعا نمیکنیم که خدا از تنه بر ما آخرتا بته. و ای دعا را هم نمیکنیم که خدا از تنه بر ما دنیا را بته. بلکه ما چی میکنیم؟ بلکه ما دعا میکنیم که خدا هم بر ما دنیای خوب بته و هم آخرت خوب بر ما نصیب بکن. از این خاطر یک مقوله است که ای از علمای قبلی خلاصه دین گرفتن میگن دین چیخست میگر. میگه دین میگه که اولامای دانشمند اسلامی میگن که دین میگه که, که برای بله من لی دنیا که انکه تاییشو ابدن بر دنیا قدر کار بکن مثل که تو همیشه زنده هستی همیشه باید کار بکنی درس بخوانی زحمت بکشی و ای من لی آخرت لی آخرتی کر که انکه تموت و قدن و برای آخرت تو کار بکنی مثل که فردا میمیری وقتی که ای در نزد انسان باشه متوازن پیش میره هم مسائل دنیای خود در می داشته باشه و هم آخرته دین مقدس اسلام در قسمت مواد در خوراک چی میگه؟ بخوریم یا نخوریم؟ دین مقدس اسلام میگه شما وقتی که میخواید بخوریم خوراک دین مقدس اسلام توجیه مثبت نداره. توجیه مثبت میکنه. توجیه مثبت یعنی چی؟ یعنی دین مقدس اسلام میگه شما بخورین مثلا حیوان گوشت بخورین، فلانی حیوان گوشت نخوریم. فلانی غذا را بخورین فلانی را نخورین اینیمی که میگه ایره بخور مثلا گوشت و گوسفند رو بخورین گوشت و پشک نخورین و گوسفند وقتی که میخونید باید ایره سبحا بکنین تا که خون ازی بریزه بعد از ایره به شکل درست بخته بکنین و بخورین ای بده انت اخروی میشن اوجه مثبت نصیب انسان دوست سال چی نتیجه‌ش مسائل سعادت اخره دنیا و اقایم یعنی ای بده زندگی. مسئول شبان زنده و اخری و, و, و سعادت و آخرت یعنی این و سعادت اخره میشه انشاخ مردم گفتن که سعادت سعادت اخروی میشن شما ایگاپه که شما ایگاپه که میزنید که ما که ما توجیه مثبت دین اصلا ضرورت برای توجیه مثبت دین ندارم در قسمت خوراک ها چه قسم ضرورت ندارن گفت ما مثلا شما میگی گوشت و نخوریم. مثلا در چین گوشت پشک فارم جور کردن و گوشت پشک مثل فارم دیگه حیوانات استفاده میکدن بلاخره من هم این شما معاصلین ساینس هستین خوبتر می فارمین من پیش از تو دیش دیدم که در چین تقریبا دو میلیون سه میلی کار از بای بیبری مرز سارس پس فارم پشکار از بای بیبری مرز از گوش سارس مرزوسکی خطرناک ترین مرض, ساز که مرض ساز از گوشت و پشک به انسان انتقال میکنه از این خاطر ما مجبور هستیم که خوردن گوشت و پشک قطع بکنیم در غیر از ما با مرض های مختلف یعنی سعادت دنیای ما از بین رفت وقتی که توجیه مثبت دینا در نظر نگرفتیم در قسمت نشیدنی ها هم دین مقدس اسلام اینی عین توجیه مثبت را و توجه مثبت ازی باز هم موجب سعادت زندگی دنیوی و با اخرهت میشن چی خسیم در قسمت روشیده نیخواه؟ مثلا نوشیدن آب برای انسان اجازه است که باید انسان آب بروشن برای انسان اجازه هست که مثلا اینی انسان باید آب میوه بروشن ولی برش گفتن که شما باید شراب نخورید یک تیدات مردم ها گفتن که ما شراب میخوریم. ما شراب میخوریم. شراب چیز خوب است ولی بالاخره وقتی که اینا شراب روشیدن نتیجه چی شد که دکتر آفرشان گفت که بسیاری مرزای ها خطرناک ها سرطان ها از نوشیدن شراب به انسان انتقال میکنند. از این خاطر انسان باید از خوردن شراب دوری بکنه. در قسمت جنس دین مقدس اسلام میگه که وقتی که شما انسان هستیم پیش امکان کردن نمیتونیم، بلکه در قسمت هم توجیه مثبت است که توجیه مثبت در قسمت جنس سعادت دنیا و آخرت نسبت به انسان میکنه. خب یک میگه که یعنی توجیه مثبت جنس یعنی چی یعنی اینکه انسان باید ازدواج میکنن از طریق ازدواج خانم داشته باشن و آطریک خانم و فامیل سا اولاد سب زندگی شود و نرمال زندگی خود پیش ببره یک فامیل م هم ج مشکل جنسیش هم رفه میشن و د پلیاضزی مشکل اجتماعیش هم رفه میشن فامیل و خانواده هم درست و منم پیش میره و از مرزهای مختلفی که بسیاری این مرزها ها استفاده نادرست جنس و بار مع از ب میره که که ما ما, ما ایگه قبول نمیکنیم قبول نمیکنیم ما... می‌خوام که برام آزادی انسان، آزادی جنسی را اعلام کردم. گفتن ما ازدواج‌های خیر مشهور که شما میگن مشروع است، ازدواج‌های مثل ازدواج مرد با مرد، ازدواج زن با زن، حتی ازدواج انسان با حیوان این موضوعات اینا مطرح کردم و گفتم که شما که یه قرار میذارید، گپا شما درست نیست. خب وقتی که گفایتون درسته، بر من شاعر ما برشون گفت که چراغ دارد و بیراحه می روید سطحا تراغ دارد و بیراحه می روید بکسار تا که افتاد و بیند خزای خیش. و خداوند متعال چی مگر؟ خداوند متعال جل جلجل رو میگه و من اعراد عن ذکری هر کسی که از حکر ما از قانون ما سرپیچی بکنه برازو زندگی بسیار خطرناکی را نصیب میکنیم خب اینو وقتی که آزادی جنسی را اعلان کردن نتیجه آزادی جنسی از اینا چی شد؟ نتیجه آزادی جنسی از اینا ای شد که یکتداد جنایت جنایتکار با استفاده از آزادی جنسی از انسانیت خود برآمدند. رفتن در جنگل اروپا با امرای شادیها هم جنس شدن وقتی که اینا با امرای شادیها هم جنس شدن داکترهای به خودشان برشان گفت که برادر خطرناکترین مرضی که ایچت است فیلم جهان امروزی را جهان متمدن امروزی را امروز که انسان می که از نگاه تکنیک مادی به محطوب بره دیگه کو راه هورته سیاره ها را تسخیر بکنه اینو انسان اقدر پست شد که از نگاه مادیات رفت تابه حیوان شد و بالاخره از جنایت انسان مرض ایت اصلا در شادی هاست شما از دکترای تب ورسان بکنن که دکترای تب در این قسمت چی میگن دکترای طب میگن که مرض ایتس اصلا در شادی ها بود وقتی که انسان ها جنایت کردند به حساب جنایتی از اینا مرض از شادی ها انتخال کرد و انسان های ببندگاریست ببندگار بلکه ای بیواری های دینه است بلکه ای بیواری های, های امروزی که در قوانین ساخت انسان خاطر منفعت خود خواست یک چند لحظه لذت ببره خبر نداشت که مسیبت کلان نصیب ازی میشه و این مصیبت مرض ایتس بود بازم شاعر چی میگه؟ صدها چراخ دارد و بی رحم روت بگذار تا که افتاد بینت بیند سزای خویش اونم حکم خداوند است که و من اعرض انذکری هر کسی که از حکم ما ایراد بکنه مخالفت بکنه با حکم خداوند متعال فان له معيشه ظالکا برازی زندگی سخت را خداوند نصیب میکنه و این زندگی سخت چمونه و نحشره و یوم القیامت انه خداوند متعال میکه به اسم انسان را در روز قیامت كل خلقش میکنه قال انسان میگه پروردگارا لما حژت اما خدا چرا مرا کور خلق کردی و کور تو بسیره در حالی که من چیم داشتم در حالی که من در دنیایت خداوند داشتم که لکه اتات که آیات نه تو آمد احکام ما تمام دلایلی که در قرآن بود کورش مترک اکنون تبدی لکه اتات که آیات نه فناستها پسی آیات قرآن فراموش کردی و که زالی کلیامت امروز خودت فراموش میشه امروز برو بر خود پیدا کو امروز برو برای خود دیس پیدا کو امروز در قیامت و خود اخر انسان در اونجا در حالت تاریکی زندگی میکنه. این است ای نتیجه نتیجیه توجیه مثبت دین در دین مقدس اسلام در قسمت یا در بخش مبدئ وجود انسان. فکر میکنید واضح است؟ ببینن بهتر خب سوال داشت سوال داره آخر باز نترکیم یه داش در بخش معنوی وجود انسان این در بخش مادی وجود بود الهی قرآن در بخش معنوی فقط سوال بکن که در بخش معنوی نقش دیر مقدس اسلام چیست از نگاه معنا در معنویت ما چی تاثیری می‌کنه بله نقش دیر مقدس اسلام در بخش معنوی وجود انسان به شکل زنده باشه شما فکر بکنین شما فکر بکنین در یک جای زندگی میکنین در یک زندگی میکنین از ولایت ها والی او ولایت دوست شماست وقتی که والی ولایت دوست شما باشه اطمان شما از نگاه مشکلاتتان احساس راحت میکنین اگر, ف... اگر من وزیفه از راد داشته باشم والی به امرائی ما کمک میکنه اگر من مشکل مثلا مشکل وظیفه داشته باشم برای وظیفه میتر اگر مشکل درست داشته باشم امران کمک میکنم که در پانتون برم اگر مثلا پلیس بخواهی در خانیمه یا دوزی در خانیمه تجاز میکنم این والی من را و پلیس ها را وزیفه میتکه تا امران همکاری بکنم به این شکل اینمی توجیه اینمی ارتباط انسان با والی ازی برای انسان یک سلسله. راحت و اطمینان قلبی در امون ولعت نصیب میگردد، در حال که باز هم میترسه که شاید سبا امین والی برطرف شود. اینال اگر یک انسان یک مسلمان در پالی که ای مسلمان هست این انسان مسلمان این امسان مسلمان این این فهمه من دارم با الله جل جلاله صوتی الله جل جلاله که قسم زوتاست زوتی قوی با ارتباطی دارم با از صوت قوی یک پشتوانه یک بک گراوند بنویسم بگم بسیار قوی دارم که هر وقتی که من خواستم باشم بر من کمک رسونده میتونه ذات رحمان رحیم بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشاینده و مهربان با اعتباری دارم با ذاتی که او رحمان رحیم است اگر هر وقتی که من گناه کرم اگر هر وقتی که من اشتباه کرم بر من میگه که قل عبادی الذين اسرفو میگه ای بگو ای پیغمبر بگو ای کسیت قرآن از مشوره متعالا بگیری قل عبادی الذين اسرفو علی انفسهم بگو بر او بندهای ما که ارا اسراف کردند زیادروی کردن. در نقصهای خود لا تقنت من رحمت الله از رحمت خداوند متعال شما مومد نشین ولو که هر قدر گناه کردین بازن این درگاه ما درگاه ما امیدی نیست هر قدر که شما اشتباه کردین صحبه کردین تا وقتی که بر شما زندگی دارین تا وقتی که شما زنده, زنده هستین شما میتنون که دوباره به درباره ما باید انسان میفهم که ما ارتباط دارم با ذاتی که رحمان الرحیم هست ذاتی که قویه هست ذاتی که همیشه ما است. و اذا سأل که عبادي خداوند متعال میگه که با پیغم سلام و اذا سأل که عبادي عملي وقتی که بندهای ما در مورد ما پسان بکران فانی قریب ما با بسیار نزدیک استم. اوجیم دعوة دعوت دای اعدادان، مدعوتی. داوود کسی که دعوایی میکنه دعایشون میپذیرم وقتی که اونا پس به شرطی که اونا هم به احکام استجابت بکنن احکام مرا تطبیق بکنن حکم مرا قبول بکنن و مرا بشنازن از این خاطر من به روی بنده های خود بسیار نزدیک هستم خب ایناله وقتی که انسان اینجا وقت در در فلت توجیه معنوی اینجا دین مقدس اسلام انسان را توجیه مثبت میکنه یعنی توجیه مسبت چی یعنی ارتباط قبی انسان با که می با ذات الله جل جلالهو می باشن ذات الله جل جلالهو می باشن ای ارتباط قبی انسان با ذات الله جل جلالهو نتیجه چیست؟ میگه این مساوی میشه به چی؟ به اطمینان قلبی که ای اطمینان نصیب علا به ذکر الله تطمئن من آگاه باشن که به یاد خداوند قلب ها پیدا میکنن ببین ما مردم اقوارستان چقدر مردم فقیر هستیم چقدر مردم هستیم که پول نداریم دارایی زیاد نداریم تمام جنگ ها بالای ما تحمل میشن از کشورهای مختلف کشور ما به سری بسری وقتا میدان جنگ برای عبر قدرت ها شدهد و با وجود از ای هم ببینید چند نفر سالان اخواد در افغانستان خدا میکشند کشند بخو... چرا نمی کشند ولی کشورهای غربی وقتی که ما شما بینیم وقتی که اونا گزارشات سالانی خدا می میتن... گزارش می که امسال 5000 هزار معصل در فلان کشور غربی خودکشی کرد دا هزار انسان در فلانی جای خود, خود, خود, خود, خود خودکشی کرد ولی در کشور ما و شما کسی خدا خودکشی نمی کنند خاطر چی؟ بخاطر که میگه که. شاید چی میگه؟ میگه خونناحق دست از دامن قاتل بر نداشت کیا خون خونناحق دست از دامن قاتل بر نداشت دیده باشی لبطه دامن قساب راست میگه خون ناحق دست از دامن قاتل برنداشت نداشت یعنی شما چیله؟ به این این که قاتل امروزی که قصابست است وقتی که قتل مکنه دامن خورالید است امسانی که در این دنیا کس را قتل میکنه در روز آخرت ایرمت دست و گریبان ازی به خون مردم آلوده هست دیده با جلتهای دامن قصاب و با سعدی بر در ما درست دیگم بتن کی میگه؟ میگه ایسا برای دید یکی کشتف و انسان بره دید یکی کشته فتاده حیران شد دید که یک نفر افتاده قتل کشیده شده حیران شد و گرفت بدندان دندان سر انگشت سر انگشت خود بدندان خود گرفت گفتا برای گفت که گفتا که کی او کشتی تو شدی دیوار علی عیسی برای که برای مقتول گفتا که کی را کشتی تو شدی دیوار تا دی بوسکی دی او را بکشد آن که تو کشت عیسی دید کوشت حیران ص و بگرفت برندان سر انگشت بر, قا... بر مکتور و گفتا که تو را تو تا کوشت و دیزار کااز کی او را بکشد؟ آن که تو را کشت؟ انگوشت مکن رنجه با در کوفتان است دروازه کست کس امراه انگوشت مزن تا کس مکند رنجه با در کوفتانت مشت تا که دروازه تو را با نزنه از این خاطر انسان مسلمان اطمینان قلبی داره که ذات رحمان، ذات عادل، ذات مهربان، ذات جبر بالای ظالمها ذات قهار بالای قاتلان بذار که اگر در ای دنیا انتقام از بیچوزی حتما میگیره و اگر انتقام بری دنیا نگرفت در روز آخرت حتما انتقام از بیچ از ظالم میگیرن بنا این دین است که برای انسان یک نوع اطمینان قلبی می تکه برادر اگر تو پلو مختلف می میخوری اگر تو داقسن کباب میخوری اگر تو دفعه در سرخارت شراب های مختلف می اندگی فراموش نکن که در روز قیامت از یک ذکی حساب میشی و دل می میخورم پیام فرمایشو میخورم جوابم از دار پیاو پیاو و کشالو خود بود بنا اندرزی یک نوع اطمینان قلبیه ایمانی هست که ایر از خودکوشی ازی که بالای را تجاوز بکنه افتخار میکنه سر با سیکل به در به ند متری صرفا پول حرام بیچاری کساس دبوریای خود دبوریای خود افتخار میکنن وقتی که برای شاعر میگه مخانیت میمان خانید میشم میگه در خانه ای شب را شب را روز کرد در خانه ما هم میتوان شب را یا در کلبه ما اوتو میگه میگه. در کلبه ما هم میتوان شب را روز کرد بوریا در نیست نقش بوریا افتاده است اگر بوریا نبریم نقشش خواهست لكن ما اطمینان قلبی قسمت داریم که این خداوند متعال برای که از دقای معنوی برای های مسلمان میترد این دو موضوع را خواه اول بحث بخش اجتماعی شروع کنم؟ خب در بخش اجتماعی چیزی در بخش اجتماعی شما به که وقتی که انسان در اجتماع زندگی میکنه، فامیل است. قونیست مثلا نظام درس و مکتب و خوانتون است. حالا گر ما قسمت ببینین در قسمت فامیل در قسمت فامیل اگر مادر است پدر است دختر و پسر است خواهر و برانر است خواهر است در یک قسمت دین مقدس اسلام در انسان چی توجیه میکنه در فامیل اول مثلا نقش اساسی فامیله بادر داره کشورای دیگه که با شما ببینیم که بسیار مردم متمدن هستن مدنیت مادی دارن و تون بخش معنویت در نظام اجتماعی تحت تاثیری یک حکم الهی نیست وقتی که مادر به چسفیت شون کجا هستن شما شما اولو مادر خود به آسایشگاه ببینن در حقیقت بد بدبه بکشش از خانه با یک بانای رمیه برم تس هست چون فرزند دختر و پسر از مادر خسته میشن مجبور استم که شاروالی اونا رو چی کنن شاروالی اونا رو تربیه کنن او رو برشان نامش آسایشگاه ماندن سفری میکنن خانم شور با هم مشوره میکنن که ای پیرزن چی کنیم که هستن بکشش از خانه با اگبانه رو میبرن تسلیم شارواله میکنن وقتی که تسلیم شارواله کردن بالاخره این زن بیچاره به اونجا یا ای مرد پینجا ساله یا شست ساله بیچاری که از کار افتاده اف اینجا روزهای بیچار بدی رسته فری میکنن در تا تار میاک یادداشت گرفتیم از انترنت جدیدی انیس خبر نقل کرده بود که در یکی از کشورهای اروپایی فکر میکنم انگلستان بده نشت کرده که یک به پیش سفید چند میلیون دلار خودا به سکه ها بخشید چرا به سکه ها بخشید؟ با از این میگیره بخشید که یک روز وقتی برادر بازی که برادر خارجبازی که فوت کرد آمدن مزدور از این برش گفت که این خانم پیش سفید گفت که وقتی که من داخونی خود، آتا داشت اسجدگاه هم نبود روش. دخونی خود من هیچ دوست و یاوری نداشتم. خواهر و برادر و اولاد من از معظم پختون نمیکرد و مرا تنها همان درودان یگانه کسی که در مریض ها به امرا کمک میکرد و دوست ما بودن دوتا تا چچکای سگ بود که باباست در پلی قدیمی بودند از این خاطر من تمام دارایی های خود به و انسان های وحشی که هیچ تا اطوفتی در مقابل من نداشتن اگر چی جز فامیلی ما بودن نسبت به اون ها می دو تا را برتر دانستم و تمام دارایی های خود به این چچکای سگ یعنی در دین و قدس اسلام سرکرین حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که در قسمت مادر میه برای یک مسلمان چی میگه ای مسلمان تو تمام روز نماز میخوانی روزه میگیری زکات میدی حج میری به چی هدفی که خدا از پیشت و در روز قیامت در جنت الهی باشی در جنت میری ولی پیغمبر سلام و میگه این یکی می که تو میگی این می الجنت تحت اقدار ال امهات متوجه باشی که این می جنت را که تو میخوایی این جنت زیر پای موادرا هست از این خاطر یک یک فرزند مسلمان وقتی که این کلمات پیغمبر صلی الله علیه و وسلم میشنواد و میفهمه که پیغمبر صلی الله علیه و وسلم و ما ینتقو عن الهاوا واس اورزوا و خایشات نفسی خود صحبت نمیکنن این هو الله وحی الها سخنای پیغمبر کلهش وحی الهی است بنا انجام چی میکنن همیشه احترام مادر خوده میکنن شما در بیمارستان برین ببینید دکترایی که بسیار پروفسور هستن در منزل 4 و 5 ا ماینه خانی شامد با مریض می باشه اصحاب خوزیز می دهن تخطیب پشت خود با چهار منزل بالا میکنن چرا بالا میکنن؟ به با خاطر که توجیه مسلم به خود با با دین می کنن اعضای بدنش بود سایید باد میشن ناخن هاشون میگیرن به خاطر از 24 و اوره تداوی کردن و در خانه اوره احترام کردن و تا آخرین رئیس گفته از پا گفته مریض گفته از پا گفته مریض نباشه اعصابو خرس میدن باز ای این مسلمان چی میکنن؟ کنن به با با, با خود با تا تا میبرن لبوسای شبادس خود تعویض میکنن اعضای بدنش بودسای خودش ناخنهاش رو میگیرن به خاطر چی به خاطر ازی که در از اینا اونونو حدا اونونو حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست که بسلم هست که الجنات تحت اقدام الامهات جنت زیر پای مادرها هست بیسگم در قسمت پدر در قسمت پدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پدر دروازه از دروازه های جنت است پدر دروازه از دروازه های جنت است اگر می خوای که این دروازه سر تو بسته شود به احترامی به پدرت بگو بعد جنت چند دروازه داره یکی از دروازه هایش پدر است در... که اگر احترام متبرته بکنی اگر قلب تو به داری این دروازه جنت در مقابل تو باز خواهد شد قرآن از باز به خاطر اینکه انسان خود دقیق بوف اما در قسمت مادر و پدر برای انسان میگه که ولا تقل لهما اف شما کلمه اف در مقابل مادر و پدرتان استعمال نکنیم اگر مسلمان هستی ایمان داری به خدا و پیغمبر حتی واضی اف را در مقابل مادر و استعمال نکنی اف کی مانه؟ اف مانایش در عربی یعنی خسته شده برای مادر و پدرتان که اف خسته شده بسیار شاید از گفتنی ای کلمه شما دفید از اون آرانج پیدا شده قرآن از این مشام میگه وَلَا تَقُلْ لَهُمَا برای زمانه گو وقتی که برای پدر میگه برای خانم برای مردها برای مردها بر مرد پیغمبر سلام چی میگه ما اکرم مِسَاعَ اِلَّا كَرِيمٌ خانم خوده و زنها را احترام نمیکنند، مگر مردهای با کرامت مردهایی که شخصیت دارن مردهایی که تقوا دارن بهترین انسان ها هستن و ما احاله هم نه الا لئین ما اکرم نسا اکرام و عزت نمیکنن ما اکرم نسا احترام و اکرام نمیکنن زنها الا کریم مگر انسانها مردهای با کرامت وما اهانهن واهنات تهين داشن و یادت بد نمیجونه و ما اهانات همنه و اینا توهین نمیکنه الا این مگر انسان های لعین انسان های پست انس مرد های بد مرد های بی ایمان مرد هایی که از سنت پیغمبر دور هستن اینا اهانت میکنه خانم های خدا حتی اگر اهانت با گفتن یک کلمه عادی هم باشه با یک بد گفتن هم باشه از خاطر مردی که میفهمه که ما باید بشه خداوند کریم باشه زن ها را کرامت خانه میخوره احترام میکنن حضرت پیغمبر ص با حضرت انس چی میگه میگه وقتی که در دا خانه داخل شدی بالای خانم سلام بتی خاطری خاطرش سلام بده تا برکت باشه بر تو و بر خانمت به شکل به امروی خواهر به امروی دختر و کسی که مثلا احادیث رو بخونه که در قسمت دختر گفته که دختر اگر انسان سه دختر یا دو دختر داشته باشه و اون را جوان کنه این دو دخترش سبب چی بشه سبب دخول ازلی به جنت میشن در قسمت در قسمت خواهر در قسمت کاکا در قسمت ماما مثلا در روزی که روز ایت یک یک انسانه که دین میفهمه به وزی که صدر کات نماز نفل بخونن در روز اید به وزی خواندن صدر کات نماز نفل چی میکنن؟ میره خانی خود بستان از این مرد پسرانه کارکار خود، پسرانه مامور خود، سنیرایم جز دیر مقدس اسلام است. بنا آن وقتی که انسان در آداب اجتماعی دیر مقدس اسلام فامیل نمی‌داند، فامیل مسلمان، فامیل متماسک، است فامیل که یکی به دیگه با اساس احترام، از این خاطر اگر شما و شما از نگاه مادی بسیار عقد مانده هستیم لکن از نگاه معنویت ارتباط ما با فامیلوی ما تأمین است. بسیاری وقتا کسای کسانی که نمی‌کنند که در خانه بودم، وقتی که در آورم پسرانه کاک پس نمید او نفر مقابل پرسان میکرد که اینا که اصلا نفتی بی برادرم از ایکاکای از ای این فسرم از چی خوشبخت مردم هستن که مریض شاید باز اقارب تان پرسانتان هم این ارتباط است که دین مقدس اسلام چیست داد در قسمت نظام درس و مکتب و پوهندون اینجا وقتی که ما شما ببین دین مقدس اسلام برای انسان تربیت میتکه برای یک نفر تربیت میتکه شما چند پدر دارین سه پدر دارین یک پدرتان پدر اصلی تان است که از شما ما توندو پدر دومی تان پدر معنوی تان که معلوم تان است که تصمیف اول برای شما عرف بی تیسی را درست او قضیه را هست اگر زن است مادر است که تو را alat be درست درس درست و پدر سیولی شما که هست کسی که شما را دختر خدا یا کسی که مثلا مثلا واسه که ازدواج میکنین از این خاطر وقتی که این نمی پدر استادی که در داخل صرفه مونیخزم استاد است از مداری دین مقدس اسلام او استاد استادی که با آخر مسلمان است چی فکر میکنه من از خانه خود از پیش اولادای خود از قابل کوچک خود اومدم دست اینجا اولادای خودم هست اینجا دخترها و بچهای دیگه هم هستند که الحمدلله جوان شده اوطفال که در خانه هستن، خوره هستند و خود خودم است با اسپشیی اطفالم پیشهی اطفال دیگه از این اولادم پیشی از اولادهای دیگه میرم از این خاطر ارتباطی که در درس است در گوانتور است ارتباط بین استاد و بین شاگرد ارتباط بین معلم و بین شاگرد ارتباط معنویتی قوی است که یکی به احترام میکنه حضرت امیرالمومنین امنین علی ابن ابي طالب رضي الله عنه دیگه که من هم نمی فهو فهور مولاي اگر کس یک حرف بر میاد بتم او با دور هست از خاطر با داشتن اوتیک انتباد سمیت استادی که نظر پدر در دا داخل سلف میشه و شاعر خودم خود مثل دختر و پسر خود فکر میکنه و شاعری که استاد خود ایکسم احترام میکنه که یک کلمه از لیاد گرفتیم ای با با و با دور هست بناآن ارتباط محکم است که این انتباد در بین مکتب و مدرسه تونی مسلمان ها قایم است اساسش مادیت نیست نره شاگد مصبت یا نته از ما تشکر کنه یا نکنه خوص باشه یا نباشه هدف ما این است که ذات پروردگار جل جای رو از ما خوشحال باشه و ما وظیفه خود در مقابل از این کرده باشیم. در قسمت قانون در قسمت قانون وقتی که ما شما میبینیم دین مقدس اسلام قانونی داره که اگر ما شما تمام قوانین دنیا را در نظر بگیریم و ببینیم قوانین را ببینیم که چقدر قانون هست هر قانونی که است یا به اساس مظلومیت است که ما شما ایراد خونیم که بعضی ها اساس مظلومیت است در مقابل ظالم و وقتی در مقابل ظالم قانون جور میکنه امیشه قانونیش در مقابل کمی بسه؟ در مقابل کسایت سرزیزیل مکردن برای ام بیتراف نیست؟ در در به مقابل احیار بعض انسانایی هستند که اونا خودخواه هستند مثلا مثل اطلار اطلار خنز گفته پرنس آریایی که چشمای چشما و صوغ دارن چهره سرخ دارن موهای زرد دارن و ایوا از المار هستند ایوا کلش انسان ها هستند با کلگی ایوا حکومت میکنن دیوا کلگی حیوانات هستند سر ایوا باید خوران باشه به خاطر جنگ های جهانی در بین جهان مختو بر اساس اینو فکر و نظریه یک تیزات فاشست هایی بودن که اونا قوم و قبیله خود برتریت میتند نسبت به دیگرها من صف پیش نسبت به تو سیاقوس خوبتر هستم مغز ورم اینی چی هست نسبت به تو بهترتر هستم من از فلان قریه هستم از این خاطر نسبت به تو برتریت دارم به این صاد به این واسه که در بین انسان ها صلیب میگن روز روز جنگ در بین انسان ها رخ میده ولی دین مقدس اسلام چیکار دین مقدس اسلام خداوند مطال با یک آیه قرآنی تمام مشکلات را طرف جا ده... ایها الناس ای ناس ای مردون ان ما و اون ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم ای ناست ای مردم در این مردم زن و مرد شامل است ای مردم و ای زن ها ما شما را کوی از یک مرد و از یک زن خلق کردیم و جعلناکم شعوبن و قبارنن و شما را طایفه, طایفه و قم قم ساختیم متعارفو و خاطره که یکی دیگه تن را ای از فلان منطقه از ایو از فلان منطقه است تسک اكرمکم بهترین شما با شخصیت ترین شما با عزت ترین شما این الله فکر کن بنازد خداوند ان اکرمکم من الله اتقاكم بهترین شما بنزد خداوند متعال جل جلاله جل با تقواتر شماست یکی از یک زاهدین یمن بود پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبدالله سلام و وقتی که میگه لا اله الا الله محمد رسول الله خداوند پیغمبرش میگه که مقام تو از مقام دیگر از در صحابه هیچ کمی نداره یک سیاپوس حضرت بلال نه وقتی که مسلمان میشن این هرقدر که اذیت میکنان هرقدر که بدلیشان گیشه کارونا میمونه بازم اون چی کل میفهمه که دین مقدس اسلام دینی است که به این برتریت که بین یک انسان دیگه انسان نیست بازم درو لحظه میگه احد احد خداوند یکیست حضرت سمیه زنی است که الى ابو جهل شمسی انی نذیخ و سدیدس نمونه گویا بهش میگه که کار از دین مقدس اسلام چون او زن می که دین مقدس اسلام دین است که زنها را نجاب داره از این خاطر قهرمانه قبول نیکن داره قبول نیکنه و اولین شهید اسلام خود بی بی و نگه ابو جهل و ابو لحب قبول نمی این قانون اسلامی قانون است که به اساس بی‌طرفی، قانون است که رب العالمین این خلق کرده ببینید اولین فلسفیش که سنوه وقتی که می خواهد رب رب العالمین حمد سنا و صفت نگفته که الحمدلله رب المسلمین نگفته خدای مسلمان ها بلکه گفته رب العالمین پروردگاه تمام عالمیان این انسان سیاه باشه سفید باشه زردوز باشه از هر قوم و از هر قبیله باشه او خدا و خداوند خدای از اون هست. از این خاطر قانون انسان اسلام قانون س... به طرفانه و قانون است که برای تمام انسانیت است و قانون است که بنابرای تمام مردم هستند اینجا هم بخش استماهی رفت با میدهیم بخش سه اون در بخش عالی در بخش عالی دین مقدس اسلام در بخش عالی دیر مقدس سوالات رو بر انسان فیدا میشه ما انسان از کجا آمدیم برای چی دنیا آمدیم آینده ما چی خواد شد اگر فکر طلبه رو وقتی گذاشته ما شما درباره باره امود دکتور که امریکایی بود خاندین در باره دو یوسف شد جوسف جوسف بود بگو که من مال داشتم لیکن باز هم ذهن من نرمال نبود ایتنان وجود نداشت در دیر مقدس اسلام سوالایی که برای انسان پیدا میشه که از کجا آمدین؟ برای چی آمدین؟ کجا میری؟ هدفت کجاست؟ نهایت در کجاست؟ هم این مسائل قرآن عظیمشان یک یک برای انسان جواب میترد انسان که مثلا با دیپرستا انسان عبارت از یک پارچه گوش میگست اونا بگرد که انسان یک یک موجود مادی و در مقابل اگر انسان به شکل مادی موجود ما مورد مطالعه کاربردیم، انسان چه ارزش و شخصیتی نخواهد داشت. با خاطر چی؟ به خاطر از اینکه از نگاه جسم بعضی حیوانات از انسان که در قوی تر است، بعض چشمای بعضی حیوانات از چشمای انسان که در قوی تر است، حس شومی بعضی حیوانات از انسان ها که در قوی تر است، مورچه شست برابر وزن خود بار میبرد انسان چهار برابر خود بودنم ایتانه. و این خاطر در دین مقدس اسلام انسان معرفی میکنه که ای انسان تو چیز به حدث نیستی نیستی که وقتی ما انسان را خل... خلق کردیم تو خلیفه خداوند هستی خلیفه خداوند در روی زمین یعنی تو کسیستی که جانشین خداوند در روی زمین هستی و وقتی که می خداوند مطالبه کرد وقتی که من اینطان خمک کردم و نفخت و من روحی و نفخت فیه من روحی من در وجود عدی از روحی که من اخبت دارد علوی خداوند خب بعضی باید که بعضی چیزها رو ما به شما باید بفرمایم که بعضی چیزها رو خداوند به طرف خود نسبت میدن مثلا میگه بیت الله خانه خدا خداوند خود خب از خانه منزه و پاک است کعبه خانه خداوند نیست بلکه به خاطر اینکه چون خداوند به خانه ضرورت نداره لكن به خاطر اینکه همیشه داری عبادت میشه از این خاطر به خاطر عزت دادن به خانه کعبه اینو چی میگن بیت الله خانی خدا میگن یوما سن شطرکی که یونس علی سلام بود شطر صالح علی السلام بود را رامین فناقت الله و یظهر بس سلامی ما شما را مگر عبدالله بنده خداوند بعضی از چیزایی است که نسبتش بخود اینجا وقتی که نسبت میشه که وانا و نفخت فیه من روحی ما از روح خود به خاطر ذی که برای انسان روی بسیار پاک و مقدس لزومی دارد که این انسان با شخصیت شود از خاطر انسان به خاطر شخصیت دارد برسمیه که تو مثل حیوان ورنیسی بلکه آیات قرآن است که وَلَقَدْ كَرَمْنَا بني آدَمَا ما بني آدَمَا کرامت دادیم ما در بني آدم روح مقدس و پاکره دابن. ما بلی آدم خلیفه خداوند روی زمین آدیم تا این حکم خداوند چی کنم؟ در زندگی خود تطبیق بکنه ولی دنیا هدف از این است دنیا مثل یک موتر است شما بینید که یک موتر است که شما موتر داشته باشین این موتر اتا ای چی موتر هدف نیست این موتر یک وسیله است که شما را مثلا از خانه تا را اونتون میاره از اونتون پس شما را به خانه میبره در وقت ضرورت این هدف نیست این وسیله هست دنیا هم مثل اینمی موتروار است که هد... وسیله شماست که شما میتارین با استفاده با کار و زحمت در این دنیا چی کنین در آخرت خداوند در جنت خداوند کمایی بکنین و نصیبتون تان شون. از این خاطر وقتی انسان در بخش عالی سوال هایی میداشته باشه که بسیاری سوال مثل که خانم بیتی با میگه که من هزارها کتاب مطالعه کردم هزارها کتاب مطالعه کردم من گفتم برطانه که یک خانم کتاب بشته کرده بنامه این یک از غرب توهم ای کنات؟ یکی تو از سمت بازار یافته شه، یک دخانیم آمریکایی نوشکان، یکیش خانوم بیتی با من است. این میگه من اصلا مسلمان نبودم، مسیحی بودم، ولی وقتی که ادیان مختلف را مطالعه برای من یک سر سوالات پیدا می شد. می سوالات عالی که از کجا؟ برای چی؟ هدف ما کجاست؟ کجا میرم؟ میگه در هر دینی که می رفتم رفتیم دینایی که در چین است، در ژاپن است، در است در شرق آسیا است. کل از یارمایی که مطالعه کردم، مسیحیت یا زندگیم کلی هزار ها کتاب مطالع کردم لکن هر کتاب از آنها دو سوال ما میداد ده سوال دیگه در ذهن من میماند آخرین کتابش قران عظیم شاع بود که من مطالع کردم تمام سوالای مرا جواب گفت و بالا بالاخره گفتم که لا اله الا الله محمد رسول الله و خودش نشهد که اینک باب کتابش است که اینک خورشید اینک فرشید از غرب طول میکنند. تالیفه خانم بیتی باومن و یک خانمه دیگه هم از مظفر حلیم از اینا دو اینات دخوا هستن که در پیش اصلیش پاکستانریست مفرلین در پاکستان حال دنیاایی در آمریکانایه میمثله و یه خواان اصلا آمریکایی است که این خانه میی به من بهبت شدید شما شدی کتاب رو تا اینک خوشید از خرب طورول می کندندمانند گفت به خاطر رازیست که سلمانها مثل, مثل شاعر سابق که میگفت که مازهکرور آن مغز را برداشتیم پولس را با دیگران بگذاشتیم. حال انار شیه تبدیل کردن چی میگن مازهکر آن پولس را برداشتیم. ما را با دیگران بگذارستم. آن امروزی امروزیشون چی میگه؟ مازی قرآن پوست آور داشتیم. به این واده اینا قرآن مطالعه بکرند، قرآن بخونن، از قرآن استفاده میکنن اینا صرف از قرآن چی میکنن؟ صرف در بالسر آرز خود میگیره که به آن را یکم کاده بغل میمونه. وقتی که به جان آن را یکم کاده بغل میمونه، اتامی تشخیص میگوید از با خطر دیگه گل یاک بلسته است. یعنی جان یکم یک است. سال هر سال بیان که قرآن را از نیزونه اینها در مغز خود جای بذارن قرآن بخورن و ازو استفاده کنن قرآن سریف می‌برن داده‌دارد در های خیرات و, و مرده ها یا پوش می‌تاند سبده سخت میکنن یه دژن اون توصیف نمی‌کنن اینها نمی‌کنن اینها روز بروز ای قرآن ترک می‌کنن دیده مقدس اسلام ترک میکنن ولی در خارج در خارج کسانی که تحسیب ندارن کسانی که دانش حقیقی دارن قرآن از این حسان رو به میکنن وقتی که قرآن میخوان یا دانشمن دانشمند میگه نگه ما قرآن کریمه که صفحه های خوندم صرفت نشد که صفحه دو میشه بخونم در صفیه اول قرآن جواب نهیاب شد. چرا؟ میگم اگر پروفسور هستم تقریباً هر کتابی را که میخونم می که مؤلف کتاب در مقدمه کتاب خود دست میکنه که در مقدمه کتاب خود دست میکنه که پروفسور است. معرفت میخوایم. اگر اسبی استقبال شده بوده، شما استقبال ما را ببخشید. میگن نه میگن. همه در مقدمه کتاب خود میگه که اسب ما استقبال داشتم، شد انسان هستم، بیش هستم. کتاب خوند باست بود. در اینترنت دسترسی نداشتم. قیمت اینترنت زیاد بود. نمیتونستم کل کار رو ولی مگه یاد روزی که قرآن از نشوان به سم آمد میگه ببینم که قرآن از نشوان در صفحه اولش برخش همگتا گفت زالک الكتاب لا ریب این قرآن کتاب کی شک دهنی است اگه خاطر مگه من فهمیدم که ایک و پوهنتون شخص انسان نیست کتاب خدای انسان است که از اول بر مشکل میتکه الکتاب ده شکل نیست. ازی از خاطر میگه دشمن می من میگه من مسلمان شدم. خانم بیتی با من میگه که اونجا مردمای دشمنه که قرآن به دستشون میرسه و میفهمند. انگار چه اونجا دستای زودی است. جنایتکارای زیادی هستم جنایت هست که اونا کوشش میکنن که از مکتب ابتدایی گرفته تا با پرهنتون شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم و شخص منفی در نظر مردم تمثيل بکنن. کالتورها رو جور میکنن. صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کلش اخلاق است. ما شما اومدیم بحث خود داشتیم درباره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و salam. صلی الله علیه و salam نمیدید یک انسان کامل بود که او را حضرت یکی از خارمهاش میگه که وقتی پسرام میکنیم که اخلاق محمد چی بود؟ برش میگفتم که اخلاق محمد قرآن بود. اخلاق علی چی بود؟ اخلاق حسین چی بود؟ اخلاق ابوبکر چی بود؟ اخلاق عمر چی بود؟ میگن که اخلاق از ما اینها اینا ها متحرک بودن که در روی جهان در حرکت هر کدوم از اینا بلی در اوجه دستای هست که زمین که حقیقت بیان نکرن میخوان که روز تلا گرن شما ببینن ما تا تقاضا میکرم که نمونه سی دی شیخ احمد دیراده با مناظرهش با این مسیحی شما چیز بکنم مقایسه بکنم چند بابل است یک بابل نیست دیگه ما که, که, دیگه، که ما شما خود چند کتاب است که اینا ببینید که یکی چند صفحه است دیگه چند سپان اون از نشان مستی که ما شما نشان که ما گفتیم که یوسف سس میفهمید فهمید برکت علی مکان این قرآن کلام خداوند است چون میلیون ها انسان ایر از قلب میلیون ها انسان به قلب میلیون ها انسان دیگه انتقال شدند یک کس دیگه تو به شرف خود ترک پیرا اگر تنه از بازار خریداری بکنن کتاب خود خوتراک اما فروغ هم کتاب چی نام داش توی سیو که مسلمان شدم عاشو کولان عاشو کولان عاشو کولان یانچ دیاق ای نفر است که خودش ایراد شما در کتاب فانی رسالت برین دانه پنج تا نه تا پنج تا 5 جفانی که کتاب فانی رسالتی فروختنه شه این خودش ساپوست است و رهبر کلیسه رئیس کلیسه هاست این بگم بگم من که متخصص بودم در مسیحیت ولی مشکل ما در چی بود؟ مشکل ما بود که در کلیسه سفید برستا رفتن هم بیتارستن. ما که از پگارنی خدا هست که مرا خودش سیاخرد کرد و باز برمه اجازه نمیده که در خالص برم این خانه من مخصوص صفید پوستا و این مخصوص سیاه ها نگا من از این خجالت میکشیدم از این خاطر میگه وقتی که از عظیم شأن مطالعه کردم دیدم که قران عظیم شأن میگه ان اکرمکم الله اتقاكم این میگه فارسی ما مواد ساخت که بگو لا اله الله محمد رسول جریان این فصل زندگی هستید شما میتوند این رسال ها پنج بخرین ببین نهایم دین مقدس اسلام در بخش عالی وجود انسان تمامی سوالای انسان جواب بیده که این سوال که جواب داده شد بلاخر انسان که از نگاه مادی معنوی اجتماعی و عالی به شکل نورمال زندگی بکنه کسی سوال داشتون میتون از طریق ما سوال ما باید بگویم که دانشمند وقتی که میگم آز قرآن مغز را برداشتون عدف است که ما قرآن از این از علف تا که تمامش مغز است این ما برداشتیم بالای خود تطبیق کردیم مسائل اضافیه که مثلا از قرآن در سر استفاده کردن قرآن و شکل اسکات در دوره ها دور دادن از قران مثلا تنها آیه قران در جای مستکردن، کردن ای را زینت دادن خانه خود یا قرآن شریف را گردن خود آویزان کردن و به امرای عزیز تشنوب رفتن آیه الکرسی را به گردن خود میکنن و به تشنوب میرسن میگه این که پوپست است، ای که پو است ما این را کردیم ما خود قران را، حقیقت قران را، مغز قران که از الف لام شروع تا و ن است این را ما برداشتیم. اینجوری سوال اول داد. در قسمت جواب سوال دومم که در غرب اسلام در غرب در ریشه است در غرب چند قسمت یک تعداد کسای متعصبین هستند اینا میخوایم که مردم عام خرد از اسلام خبر بسازن در صرف در زمینه که محمد صلی الله علیه و سلم میخوان رفعامی بکنن با شکل های که ما شما میبینید که پیغمبر صلی الله علیه و آله به این شکل نبودن. شما شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و آله میبینید که یک نفر میگه که یک روز ما به همراه پیغمبر صلی الله می رفتم، یک کس آمد کس کت از, از از از پشت سر پیغمبر میگه ده شورای پیغمبر سلام یک قضیه، یک چیز درش بود،, بود میگه چطوری خلافتا گردن از یومد. تو کوشش کرد که نگرون خدا داد که خدا داد کردن که اول پیغمبرم عصبی میشن نگرون خودشناسی درد داشت خیریت است گفت که بر فلانیش کار نما از مال غریمت هم کمک بکنید دیوارش گفت که آلو فلان خلاص شد در ان ان شاء الله اخلاق پیغمبر تش هر از ده سال ده خانه حضرت پیغمبر خانه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلام زندگی میکردم در ده سال بر ما کل بیای کار دری میکرد نگاومت از پشت شانه نگرفت بر من گفت که عمو کاری که بر گفته بودی نرفتی اخلاق پیغمبر را شما اخلاق پیغمبر را بخواید پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که در مجلس میشیش حتی میگه پایش نمیشه تکیا نمیکرد کرد به خاطر جارمی مقابل به شخصیت نشه گفت که میذت که کس او چاک برشت وقتی که اجازه دست وقتی که برش میاد تا وقت صلی الله علیه و صلی الله علیه و در خانه آن سری کس که اگر سیاسی خود خودش می بود برای خاطر شخصیت پیغمبر یک تعداد متاسبین هستند که عوام الناس نمی که مسلمان شوند اما وقتی داد مردم هستن که اونا جوان که در با همتون هستن اینا اگر دین حقیقی بفامن مسلمان میشن ولی در که عیب دما مسلمان ها هست که وقتی که ما شما یک غربی رو ببینیم به وقتی که ممثل قرآن باشیم خود قرآن متحرک بسازیم خود هم مثل از اونها رو جور میکنیم اگر اون یک گلاس شراب میخورن مسلمان دا از شراب میخورن مسلمان میتونه که در وجود از او تغییر بیاره من از خانم فلیپینی را در جایدی دمک در یکی از کشورای در شمال گفتم که خانم میشه که مسلمان شوی من مسلم درواره ماره گنه خورم ماره گنه خورم وقتی که باز به وقتی شد در که باز به سلمان شد در میزنن من هیچ وقتی اسلام قبول نمیکن ازی قاطر رب نالا تجانلا فتنه من للذین کفر و خدا و ما را وسیله کفر و دیگران نگردانی که اعمال ما را ببینه اسلام از اسلام متنفر شد سما در سرکا ببینید وقتی که یک نظر بسیاری مردم افغانستان صاحبی موتر شد لیکن سرهنگ موترداریه ندارن وقتی که یک زن میبینن یعنی خاطر متأثر شد آه وقتی ما میترون که تاثیر بکنم که ما خود ما صحابه پیغمبر چی بودن صحابه پیغمبر قران های متحرک بودن یعنی اعمالشون نشستشان برخوسشون مثل قرآن عظیم شان بود از این خاطر تاثیر میکنه همین لوتایی که ما با شما کارخانگی دارم که شما در سایت اینترنت دنیای مسلمانز برید دیروز یک، یک، یک، یکی از معصینی یک چی دار؟ یک زن میگزنه مثی که یک مسلمان یک زن بود. لباس حجاب پوشیده بود لباس با حجاب دختر مسلمان مردم مسلمان ساخت چون دینت که می دختری که حجاب می پوشن شخصیت داره حیثیت داره کرامت داره با افتخار وقتی که در درس می خونه با حجاب در درس می خونه این فرق میکنه با اون دختری که در بواندون ما وسیله و آلو دست شاگردا هست وسیله دست مردها هست تمام رسبیه رقتا که مردها از وجود از استفاده کنه یک فرادر دختر به فرمان مسلمان, مسلمان ساخت ما ختم شد خداوند متعال جلا او جل اولین روز در زخ ما شما که دیدار خداونند است او را روز سوالت ما شما روگرداند.